آعیر ما آ آعیری ما ایشیو رفزرای جنتو، نره بیست چا نا ایری بیست چا ذره توشت رهه ونگه اوش رفزرای مننگ هو یا دعنام و ایریم هنات میجدم اشهه یا یاسا اشیم یام ایشیام اهورو مسطا مزداو